فصل شش بخش سوم حضرت عباس علیه السلام ربایی حضرت عباس علیه السلام هر دل که پر از شور و پر از احساس است از برکت ساقی و شمیم یاس است چشم همگان خیره به جایی شد که ایوان تلای حرم عباس است ربایی حماسی حضرت عباس علیه السلام عباس که پور حیدر کرار است او رمز شجاعتش بسیار است خیبر شکنی بود بسان پدرش او شیر بود فاتح هر پیکار